فصل 28. روز دوازدهم دسامبر همان سال حادثه دردناکی روی داد که ایده ما را تیره ساخت دوگلاس فربنگس پدر که فقط 56 و شش سال داشت ناگهان بر اثر همه خلبی در ویلای کنار دریا زندگی را پترود گفت او قدیمترین و عزیزترین دوست پدرم بود پدرم که همیشه از مراسم تدفین دوری می در تدفین دوستش شرکت جست یک روز به من گفت باید شرکت در مراسم تدفین را ممنوع کرد چون چنان اندوهی ایجاد می‌کنند که من قادر به تحمل آن نیستم او گل بزرگی بر مزار فربنگس گذاشت که روی آن نوشته بود به یاد دوست عزیزم دوگلاس که هرگز او را فراموش نمی‌کنم.» چه خاطراتی پدر و دوگلاس همیشه مثل دو شاگرد مدرسه با هم شوخی میکردند و میخندیدند در دوران فیلمهای سامت که کسی صدایشان را نمیشناخت در بورلی هیلز آهسته اتومبیل میراندند و بعد میایستادند و از آبرین را میپرسیدند و آبرین هم با تعجب از اینکه دوهنرپیشهٔ بزرگ شهر خودشان را نمیشناختند به آنها جواب میدادند و پدر و دوگلاس هم با صدای خشن تشکر میکردند و غالبا کسی که مورد سوال واقع شده بود اطرافیانش میگفت فکر نمیکردم چارلز چاپلین و داگلاس فربنگز چنین صداهای نخراشیده داشته باشند پدرم و دوگلاس خندان از این شوخیشان از آنجا دور میشدند و حالا دیگر این خوشی ها برای همیشه از بین رفته بود برای پدرم گویی همه چیز با دوگلاس از بین رفته بود در ایت نوئل کولیت به من رسید، دو سگ ایدی داد. ما این دو حیوان کوچولو را سامسون و دلیل نام دادیم. و حالا در این دوران اندوه پدرم چهار تا سگ توی منزل داشتیم. دو تا سگ جدید بسیار شرور بودند و هرچند که ظاهر مؤدبی داشتند ولی همه چیز را می‌دریدند و پاره می‌کردند. پدرم به ما میگفت: بهتر است این سگ‌ها را برای مادرتان ببرید. او مطمئن به سگ محافظ احتیاج دارد و به هیچکس نمیخواست شر این هدایای پالت را به راحتی از سر ما باز کند عید نراحت کننده ای بود پدرم همان شور و شر استودیا را به منزل آورده بود. من غالباً پالت بدبخت را میدیدم که اشک در چشم داشت تنها کار او را به گریه نمیانداخت غرورش هم جریه دار شده بود پلت دیگر آن هنر پیشه تازه کار و شادمان عصر جدید نبود. هر جا می رفت او را می و اینکه پدرم در مقابل سایر هنرپیشگان انتقادش می کرد او را می آزرد. گاهی چنان اندوهگین از کار باز می گشت که من وستی در مقابل پدرم مسترد می شدیم و اظهار نگرانی می کردیم. پدرم می گفت او امروز زیاد کار کرده. میخواستم چیزی درباره بازیش به دو گوش زد کنم ولی این کار آسانی نبود و بعد سعی میکرد باز هم اشتباهات پولت را به خود او نشان بدهد ولی پلت ناگهان از جا در میرفت و میگفت او چارلی دیگر حرف نزن تو خیلی دیکتاتور هستی. پدرم هم رو به من میکرد و میخواست که پلت را تنها بگذاریم و بعد سعی می او را به حال آورد ولی پولت مدت زیادی این وزن را نمیتوانست تحمل کند. به همین جهت اوزا زود به حال عادی باز میگشت. برای من وسید این نزاها انفجارهای موسمی بودند که به دنبال خستگی کار پیش میامدند و میبایست قبل از خاتمه فیلم پایان پذیرند. در بهار 1940 فیلم برداری تمام شد و دوران راحتی پولت و سایر همکاران پدرم فرا رسید. بلی برای پدرم کار تمام نشده بود. او حالا میبایست موسیقی فیلم را تهیه کند. چندین جلسه تمرین موسیقی در منزل برپا شد. من میدیدم مردی که یک نوت نمیشناسد و به هیچ سازی آشنایی شنایی ندارد، موسیقیدان شده. همچنان که سال‌ها قبل همه آهنگسازان، من جمله النیومن را به هیچ می مرد، آنها فقط می باگست نظریات او را یادداشت کنند. او آهنگی را زمزمه می کرد و موسیقی دنها آن را یادداشت داشت می کردند و بعد برایش می نباخدند. پدرم با دقت به فراگرفتن و نواختن آنها گوش می داد و می گفت این قطعه خوب است ولی یک قسمت آن مناسب نیست یک دقیقه صبر کنید و بعد از نوع چیزدی را زمزمه می کرد و آنها را یادداشت داشت می کردند و بعد آن را می نواختند. این کار چند بار تکرار می شود تا سرانجام رضایت پدرم حاصل می کردید. ساعتهای درازی هم به تمرین در استودیو گذشت. پدرم بارها یک صحنه فیلم را چند بار می دید تا موسیقی آن به خاطرش راه یابد و بعد تمام نظریاتش را در مورد موسیقی فیلم به آهنگسازان سازان می گفت. و غالباً برای راهنمایی آهنگسازان از موسیقی دانان بزرگ نام می برد و میگفت این قطعه باید به سبک واگنر باشد و یا اینکه برای این قسمت از فیلم موسیقی باید همچون ساخته های شپن سبک و لخزنده باشد و برای این کار می از اوبا استفاده کنیم. ولی گاهی خواسته های پدرم انجام ناپذیر بود مثلا ریتم یک صحنه آنچنان تون بود که امکان نداشت به قالب موسیقی درآید و موسیقیدانها علت این عدم امکان را برای پدرم توضیح میدادند و او می‌گفت این‌ها به من مربوط نیست آنچه را که می‌خواهم انجام دهید و آهنگسازان هم سرانجام قبول می‌کردند که ذوق و سلیقه پدرم در موسیقی ستایش پذیر است بدین ترتیب پدرم روی هر نوت موسیقی فیلم دیکتاتور نظر میداد. و در اواخر کار چیزی نمانده بود که آهنگسازان فیلم به جنون مبتلا شوند و با این همه از کار کردن با پدرم خسته نمیشدند و حرکات آنها که می کوشیدند ریتم خاصی برای موسیقی فیلم بیابند واقعا تماشایی بود صحنه تمرین موسیقی فیلم به راستی شباهت زیادی به صحنه نمایش باله داشت از طرف دیگر به نظر پدرم کمدی نهایت شبیه به باله بود و مانند یک بالرین زیبا و جوان می توانست حرکات بینهایت نرم انجام دهد قدمهایش سبک بود و انسان را به یاد یک هنرمند آکروبات می انداخت دستهایش چنان ظریف حرکت می کردند که به راستی قادر به بیان خیلی از احساسات بودند هنرمندان باله همیشه پدرم را در شمار خود به حساب می آوردند از جمله روبرت هلببن ستاره رقص مشهور گروه سادلرز ولز به دودلی نیکولز نویسنده مشهور گفته بود چارل در رقص بیش از من مهارت دارد. پاپا باله را می و با ناشناسترین رقاصان نیز دوست بود. در میان بالرین ها بیش از همه هنر الیسیا مارکوبا و الکساندرا دانیلووا می ستود. سالها پیش با نیجینسکی ملاقات کرده بود و در حالی که هنر عظیم او را ستایش میکرد به من گفت آنقدر به هنرش علاقه داشت که سرانجام سلامتی روحی و جسمی خود را در راه آن فدا ساخت و بعد با لحنی پر اندوه هفزود هفزوز که او دیوانه شده است دیوانه کامل ایار و بعد گویی میخواهد نیجینسکی را تپره کند گفت میدانی؟ دیوانگی تقصیر او نیست. پدرم بر خلاف بسیاری از اشخاص عقیده نداشت که جنون و نبوغ خیلی به هم نزدیک هستند از طرف دیگر مایل نبود او را نابغه بدانند و می گفت من نابغه نیستم فقط آنچه را که می بینم و می شنوم همانطور که هست به مردم عرضه می دارم. هر وقت یک گروه باله به شهر میآمد پدرم سعی می کرد تا حد امکان در برنامه های آنها به عنوان تماشا چی شرکت کند. او قبلا در مورد برنامه باله مطالعات عمیقی انجام میداد. بعد از پایان برنامه به دیدار هنرمندان میرفت و آنها را به منزل خود دعوت می کرد. از جمله میهمانان او گروه باله روس مونت کارلو و گروه باله سادلرز ولز بود. پدرم از حضور آنها لذت می‌برد و حرکاتشان را به ترسید درخشان تقلید می‌کرد هرچند که هیچگاه رقص نیاموخته بود مثلا گاهی به یک رقاصه می‌گفت شما در پرده دوم دریاچه خو یک سبک بسیار زیبا داشتید و بعد بلافاصله حرکت او را تقلید می‌کرد و می‌گفت این حرکت شما ستایش پذیر بود یک روز بعد از ظهر ملاقات یک گروه باله با پدرم به ای منجر شد که من شاهد آن نبودم ولی پدرم آن را برایم نقل کرد خانه ما بر فراز تپهی قرار داشت و جاده که به منزل ما میآمد در سمت راست خود گودالی داشت آن روز بعد از آنکه میهمانان بسیار میگویند و میخندند هنگام خداحافظی یکی از هنرمندان باله به نام کازیمیر کوکیچ که حواسش متوجه جاده نبود به درون گودال پرتاب می شود. او نمیدانست عمق گودال چقدر است و در صدت بود نمایشی بدهد و قبل از آنکه پدرم بتواند مانع شود به درون گودال می افتد. همه به سوی گودال میدوند و به داخل آن نگاه میکنند. کازمیر بیهوش میان کاجها افتاده بود. او هنرش پریدن بود، ولی نپریدن از ارتفاع ده پا به روی درختان کاج. چند تا از زنها شروع به داد و فریاد می کنند. پدرم گریه کنند می گوید خدای من، خدای من. او تصور می کرد که همه اصطحانهای کوکیچ شکسته است به همین جهت به فرانک دستور داد که پزشکی را به منزل بیاورد. بعد همه آنها پای دیوار رفتند و دور کازیمیر بیهوش حلقه بستند. همه گمان می کردند که به کازیمیر لطمه زیادی وارد آمده است و زنها می گریزدند. خلاصه چنان فاجههای در خیال خود آفریده بودند که مرگ کوکیچ را میدانستند می پدرم مرتول میگفت: «خداوندا: پس دکتر کجاست؟ چرا زودتر نمیآید؟ در میان این اندو و هیجان ناگهان کوکیچ چشمهایش را باز کرد و تکانی خورد و با تعجب به اطراف خود نگاه کرد او در مقابل جمع ایستاده بود هیچ اتفاقی نیفتاده بود جز اینکه در عالم مستی کاری کرده بود که در حال عادی جرأت انجام آن را نداشت زنها از گریه به خنده افتادند و خود هم هم میخندید آنها دوباره به منزل بازگشتند تا جامی بنوشند و پزشک هم در بادنوشی آنها شرکت جست پدرم این حکایت را به عنوان مثال در مورد اخلاقی که بین کمدی و تراژدی وجود دارد نقل می و می اگر شما کسی را هول بدهید و او به زمین بیافتد ولی صدمه ای نبیند کار خندهداری کرده اید ولی اگر کسی را به سختی به زمین بیاندازید و مجروح کنید یک صحنه تراژدیک به وجود آورده اید پدرم همیشه در مرز میان کمدی و تراژدی بازی می کرد. و این کار او را درآمدی نام داده بود و می گفت پدر شما این هنر کمیاب را دارد که میتواند گریه را در گلویتان بشکند و به جای آن موج خنده بیرون بکشد.